كتب باشترين هاوري خواند نوي كتبو قران بنيو حكمتاكاني نوسيندا كتبي چشدي مجاور نوسيني هجار مكرياني خواند نوي عميد علي گمار کردنی دلیر سلین گگرانی عزیزو خوشویست سلاوتن نبی خوشحالین لبشی شست همینی خوین نوی کتیبی چشتی مجوری هجاری مکریانی دین ولی یوی برزو خوشویست فرمون لگل بن هجاری مکریانی دنو سی، روش یک ساعت یکی پشنی رو توفیق وردی دگل لاوی که کوئی نمال. بسر نانده کوتن، ماسی و برینز من هبو، لای زور کس وطبوی، هجار جاسوسی امریکایا، دنه چون و برژوازیانه در جی، همو روش ماسی و برینز بخوا، منش پیموتاوا، حتی وردی ام نوارد چون پر کردوا، اوش وطی، بخوا که که زورم وتم اگر بلیم جاسوسه خبری لناد نوی گرن به خیال امپیاوتیم د گل کردوی جا چون ک ل روسیا او بو یاندنوسی پروفسور وردی با چن نکته کی لی بجرمو نکته یک بیت سیامندو خج نو سیبو ک امل ادبیاتی ارمنی ور جیراو لو مم کرد وتم سیامندو خج هر دوغناوی کردان بیتکه ستان ساله به کورن سراوه بکرمنجو سورانی هيا چون تو اشتیاق د کما مستیاق کردی وتی د سب حق خدا او حزبابه ارمنیا نه تنیا 5 دینار حق ترجمه داومې آی لو دز برانه نقطه 2 ل کوران دا د هاتو جنیوی دا من کاکا کتابم وو دی راساتي کوردی غلط ګیری کړدو ل باچی شته دینار قرضار بوي بزانه کاری کومونه کی کا хай غلطه کې د بوای غلطگیر ربع دینارک جریمه ده پاش حقکه خو یې اوندې د هزار ګرامه باندې بشمکرد هیڅ هم او هیڅ اون یکه کیتل لونټنۍ کله سره وردی دګر مو او یوکا پروژه دو دینار په قرض بده یع دو سبې د دمواد 45 روږی پیچوبو وتیان وردی لید د پرسه کبیني می وتی ها کاکا او روجا که فارم لتو ورګر چوما بنکی چاپي فرانکلين وتم كاركتر ني بي كم وتيان ناود وتم توفيق وردي وتيان توچلو دودينار دلامانه ها ولي ګرا او سګبا با او پولاي ل پردام هوشم ل خومبره خیابان دله رویشتم تورنبل خويلي دام لو سا ولا بيمارستان دابوم وردي ل دوکاني بشير مشي وتي شويو پارتي شويو پارتي او دولت ديانهوي جمال عرف کډاکټوري بيتالبو وتی و اب تو جور نه خوش روانیت ه د نن د نا ټوله مدرسې فیرکاری او دیالي د ټونن پیدات کڼ من نخوش خوښ نیم او ان نه صد دینار ورده جاسوسن ډاکټر جمال وتی جاري حقوقه کم صد و سیود دیناره نه خوش کیته منکه بيتالم د بيقسي لپکم نکخد زور جرناوي بشیر مشیر د خراب نیبیناسي به مشیر خیات کی نخویندوار، تواو نید توانی امزای خوی بنوسی. زور سالان لشکری عثمانی دا استیوار بوا. جگل عربی بغدایی، ترکیو هند یک هندی دا زانی. مقالو کتب نوسی نیلی بو بو با نخوشی. هندین با گالتا پیگوتبو ماموستاو باشد نوسی خوی لخوی لگو رابو. خیات یکی چوبو دکانی کیابو بوبو بوبو بو بو کلو پو باشگای ادیبو پیوانی لکرکوتا. بې چکی ده وو تو فلانشت بنوسه من تالیف ده کم تنانات جاریک شعر منی شی تالیف کرد اوی لا تالیفات کی لبیر ماوه فنامی کدیگو تجربه بکن بوخم تجربه مکردوه دو من نه خوش کوتم دیګوت 4000 سال لموبر شی ایک ناوی روبین بو چنګ یک بلنجیل د شیندزیل همدان چاندی برنج ایرانی لیکوتوه نه خوش اگر مردم بن بنو کردستان وتیان او کار نه کړی وتی د سابخو مل قبرستاني بغداد دغل او عرب سګبا باندې دا نه توانم بجيم کچي 40 سال بوله بغداد دغل عرب جیابو کتب او روزنمه کوردی د فروشت بلم اگر خواني داوي پیدا د یغود جاور بوشی به فروشه داوي پول شامل به احمق کی خوین شیرین هر له شخصیتانی کله بیرناڅون مام حکیم پیرمیر دی کی توتن فروشي کرکوکی بو خوی با پیغمبر دزانی، سالح افند یکی باسم کرد جنیوی پیدا، دی او اوهیس کنم کرد و تا پیغمبر، هر مخلوق منی جنیو ناشی ناسم. خبر یکم بوهاد، مکتب سیاسی حزب داله دبی یک جاری بیتا کردستان رادیو من پیدا کردوا ایداری بکا، بخو آمده کردن و دیبین کردنی مال و قرز و قولا را کردن حوتی خواست، دبوی شما بروم، جمعه کودتای بعسی قومه، لسربانی مالوزور باشمان دادی که بانبرانی با وزارتی دفاع بنکی قاسم دکره من با همو اقلی خوام پیموابو لشکری کردی خوامن هلی بو حلکوتوو ضربتی خوی چاک دوشینی هرکه خوام آماده دکرد چو ملای جلال بابانی کارگوزینی اداره وتم تم اداره درم که با حقوقی منگیک لزیادی ورگرم دچمشورش و تیم پرواندکت هند پاک نتوانم هیز بحانه بدوزمو تو ت بغدای زوریان عبدالکریم قاسم خوش دویست. هر خلکی بازار و کولان به هزاران رجابون وزارت دفاع کچک من بدانی شردکین. بلام غلوری و سرسختی قاسم لوانه نبو. هر گوته بوی هیچ نیا. یست خلاص یانده کم. خلککی اندر کرده بو لمایدان پیش وزارت کومبو بونو بژی قاسم یانده گود. چندتان که با قاسم با اکسی قاسمو هات بوند. خلک بخوشی و بپیریان و چو تانک لئن مخو کوته بون ستانکسیان بر تیربر دابو با روج دوهيي چشتنگاو قاسمگیر او کودتا سريګرد ل رادیو ل سر یک فرمان قتل او عام شي او عیان زور ل شيعيان د بن زنجيري تانكي روسيا پانو فلج کرا زور کسين بمشار د 10 فبرايره به تورون يزا توپت کړد ګرګه کورده فیلیکانیان کله دوري بارګای غوزبو شلم کیرم نه پاريزم و بر ټوپو ګلټان کنده او بیا سې د گل شیوې ولایران شیوې ان ذکر رنګا تیمور لنګ هو لا کوش به قاسم او چنکسک له مرکزی رادیو بر ګل ل درن لو جهنمدا توشی نوري احمد طهابو وتی خام مخو باسیه زلامه کان کډه ګل مامستانې عمل حفظ دابون قولان پی داوین کاستقلال مان بدنیو لا عراق مانجوه کنوا مني جوتم كاكا نوري اواني كا توزيغ روح مبها و نجاداني خوين ناكن اواني كا نجاد پرستي واتون دو چون بو کرد جاگه متمانن من قد بو دعاية نالم آمين او جوتم كاكا تو هميشه بدبيني ناجزاني سياسة مانای چي مني جوتم يا خواواب واب زنم سيام شویكو دتابو ما موسى صالح يوسفى قل زلامكاني پارتیو لحكم قاسم دا جيرابو هاتسر رادیو مبارك بعده لبرایتی کردو عرب کردو تیری دعای بخير بو بأس کل لهم بأس یکان تونترو تیشترو دجی شوعی و کردیش علي صالح سعدی بو ککرابو وزیر ورا کوردیی خلکی قوشته پي پناهولیر بو برایی کی, برای کی بناوین ندیم صالح سعدی لا مبانی ام بو هزار جرناوی بابیدینا هر تا جزراوی اجودانی همیشه صدام صباح میرزا اردلان كرد بونو دوشمنی سڕسختی کورد چنلوی چی پارتي و کوتن حبس کرا و کوردکان له حبس درخن زور افسرو کورد دیکەش له حبسان درچون خبر هات کیک یک له پارتی پارتي له جبهه شر وهاتو بو و گفتوگۆ له اوټیل بغداد یتم لنقسی باسی جبهو پالوانیتی پهلوانیتی پشمرګه امچن پرسیارم لیکرد پیموید یوکوا سرکوتبون حکم بغداد 48 ساعت لپاره خل وشابو کس آغای کس نبو بو بوچی هجوم تن نکرد دوه پاشګردانیه د دا کرکوک بګرن کله هم شینان حساس تر بو او دم اگر قاسم نکوتبا د ګوت بګج دښمن داشون اگر وګ یستا به سرکوتبا دتان ګوت بګج قاسم دا چون به یستا وتویږي بشی کین له بیرما بهر سکهوتی قسیب یتام دکی سرباز د نو سنگر د کلا خو اسنی به و تفنگ او توپ روی د من نه چونی بګرم منیشوتم کاکا اگر له فرمانی یک فرمان له بغداد اوونه او نزان سربکان دسته بود نجیری اگر فرمان دی بو دیاری کرا چکو فرمانی له سره او بو حد زور زحمت تر دبه ای شوتی نا کاکا اگر خطا کی شبی له و یا او گتی شر را گرن برا او هر سواری سری خو دیبه لباتی سیاست خوونده بینی. منی شودم دب خودا خوونکش رازد بو، دو راش پیشتر ویتی قاسم دروخه. اوی شودی، ها، نزانی بوچی گوت من تو وره، بو رادیو نبو. یمن یوان من دگل برزانی نخوشا، توی خوش دو بی، وابکه یوان من خوش که یوان، دبی هر دگل خوش بی یوان. دوی لپارهوی دولت کړد کله بیرم نماو کابل تیار دا جګی منیش بکنو پاشنی ورو او روجوتی رګی توله تیار دا ندان لشتک ترسم توشی یوسف میران بوم ک برادر یکم بو برتبی سرګردو له حبس بر درابو غتم کاک یوسف اترسم بدګرنوه به تا در فاطمه ور راکیم کاک یوسف جلکی افسری کرد بر به تاکسی کړو یوار برو کرکو کاتین لسای جلک کانیو اجازه دراین له دروازه بغداد در کوین لرگه جلکانی گواری و شوحاتی نه اوتیل سیروان لکرکوک. لیره دا دموی توزگ برو دواوا بگر ریموا. چندجر نوی عبدالله کانی مرانی موتوا. لدوی حت نویم کس و دوستم نبوا. و گوی کر جود بوین. به مندالی تا چواری سرطای خوند بو، كانت سالة كاسبي لديو رجيف روشي كرده بو لكاركوك ملي لخويندن نايا و تال حقوق درچو لدوران قاسم دا كاري حزبي لبغداده كردو هميشه پيكو بوينو تنانت فولي من لاي او بو كبوم خردس کا زور جارده گو من دا تما خاريز بو دکتورا ورگرتن خمم نيا چون که تو براي براست ميو آغاد لمندالي من دبه هر وقت منش بو توا براستي زورم دل په خوش بو او روژانی که حیزب نرده بوی بچمه شوارش، هاتم مال برا، تو کل بغدا در روی نچی بتم ایمن بی. با خودا قط احوالی منالکانت نپرسم. وگوزی اک سهولاوم بسرده کن تاسم، وتم کاکا من خودا به همیدی توی خلق نکردم. هر واق دزانم او روژگاره کتون ندناسی. شو بیانی با ترسو لرزو بسر من بل. بیانی با تاکسی اک رویشتینو مالی خالی که یوسف عبدالقادر افندی کلا لبی بیژک چند روز یک پیکه و بنهینی جیابوین بیانی بر چواغ و چواغو جلکی کردیه و چوی نکویا بوینا میوانی بنکای حزب سعید مصیفی نوی که پیاراده گیشت بسی اوی کرد که چند میزر سوریه که هاتون رای نگرتون تیه گیشتم که دبی نوان حزب و برزانی و خوش نبی و که من بیرم لیده کرده و دمو اواره گی له بهار سال 1961 نم دیبو او روج شکدیت موه مانگی سههم سال 1963 به اختیار فرمیسکم دا بارین پر بخیر هنان موتی حجر منتو وهاب آغا که هر دو کووازک زلن ل شورج دا چلیبکم اوتم راست دوی من ل ترسی مردنی بعده حالاتوم قبر هلقن 25 دینر اسن نو دوای دو روش قبره ک هر هاتوم لیره بمرم ک قبر بخور رعیه. ولیم تکا کم دقل و ها بقایم حساب مکه. اول هموک استانبول تره. شو ل مجلسی برزنی داوتم. تو نزنی در رجنمو رادیو بغداد چند دم جنیو پیدا وی. وی بالای جمله بود. اره کی دیکش لیره من چیمگو. شوکاتی ملا اسمیل ک افسری کی مخابرات بودی. فرمود اگر با خم چاوم لی باید هزار آمدانوسیو با خوی بای خند با ما و. هر دمزانی درویا، چون که من هجار باش داناسم. گوتیشم، بمبخشا، من با عقل خوم چاکترین فرصت زیارین تندازده کل چلو ساعت شیوهوی بغدادا هرشتن نکرده کرکو. بارزانی فرموی، جاری لو باسو خواسانه گره. سبه پاش نویج، دگل یکیک لحوالانی حزب در کوتینه گردی پشت مالان. زوری پیاو ماقولانی، اشایری و دروبری لیبو. اوها والله مقصيبو کردین وتی ککی خون با سی رگس پرستن لبر اول ناصر یری دین دده یعنی لشکری مصر او سوریه او عراق دبن دجمن روسیاش یری دین ناصر دده ایران و ترکی دجمنی سرسخت مانن امریکا او انګلیس یری د ترکو ایران دکن لهمو لاکه وخطر زور ظلم لسره خواب کا شر نه اغاني اغه یعنی اشعاریش وقضلن سرچوپی بده بګای هر برو کدی نه دکشه لینا بابا یما توت نکمن بون افروشراوا وبکین چن قروش کن پیبگا وبکین اشتاقلا دل نیشی چالتو کا کیش بفروشین خلاصه نو خسن کرانو بلا وانک وتم حافل بارس تو رئیس شورشی او خسن شرکران سر دکاته واجب نه تو بیبی سن تو هر د بدل یان گرم کی تعریفی آزاد بونن بوبکا او جوتی تو حرفه قدل الف بيس سياسات نخواندو نيشوتم بلي راس تن نخواندو بلان بفرمو چبو كاركيده فرمو من بيكي بينم او شوتي بارزاني نخواندوار كا روحي اشيلتي هي لحزباتي نا زاني جاب فرمانو ديسپلين نادا يما دمنويد سلات بحزب او هر فرمان اجراب كا وك فرمان دي كي لشكري دولتان تاوا بي گومن تحمل نا كري منيش لولام دا بي بله ها ولی خوششویست منش دزنم او خرندواری مرکسیستی نیه که حیزب هیتی جای نیزانی یا نیوی بیزانی حیزب لوا ده خطایی که کرد و کلی کم کنگری بغدا دوی حتناوی برزانی هرچند گوتی نب مصروکی پارتی نچر من کرد و کرد من سروب. اجازه حزب روزنامه من با اول قاسم سند لپاش شر در بندی خان و تان شر بو نکردین بلام او که به برزانی کنی خوی اوی کرد که کردی حزب شیخ رشید شرکی صوفیه شیخ رشید چوارصد کسمان لبرسی کسی صوفیان شکا که سرداری لشکری ایم عمر دا, دا بابا بارزانی هر صوفیه که لکشتونو بدلگرتن لدستی درچون اوابون دیوی ترکیه لشکری عشایری جاش و سپای دولت راونا تا نهاد بمدی د حزب نبو جایو لسای عزایتی و شرکری بارزانیان و استابوین ام قواتا کسی ک باورناکم راضی به همو در صلاتی خوی بدات دست منو توی اکو برایم احمد یک که هیچ هنر یک من لم همو شرا ندا بلا من بلا موکمن بیناسم باورناکم بزور خوی من بسر دب بس سپینه رنگ اگر دوالی بکیم پچیتو برزن و حزب بخوی شورج بر رو بره دلی چی؟ امی پی بلیم؟ اویشوتی چون دویری؟ با شرفم هر لدمت درچه دزبجی برگولت ادا؟ من یشوتم اگر بر ملشم بده پیدالم کرد یا نوی بچوره و بزرن نویری دویرم نویری دویرم دریچه کیش هست تاموتم هر امشو پیدالم تو از یک بانگی کرد راستا راستا حتی لامو تی وگری من تویراد پی بالی ایشوتی باشه در رمو بارزن بزرنی کنش دگل خوی دبا من یشوتم نکاکا لبرچاوی رش منو تو گناهی و ناکا خود ده زانی او بارزانی چکدرانه نه دیالکتیک یان خوندوه نه ده حزب میز بیان چی لجر فرمانی بارزانی درن بو افریت شرناک لالف بای سیاست زور لمن کولوارترن اگر بروا دیار اوانی شید گلم ای شوتی آی ده بخوه اگر وابی ایماتید دشین نا باب پی مله پیشی پلی دلم منم گوتو شو لمجلس گوتم که برزنی او کرد و حزب تویان انویه تو بناشیه و برزنکی خودت ول کلمان بیای و من دلنت چی و تم حزبعتین هزنی خندوار نیت به قول شاعر حیم شاعر برهان دیکتاتوری لاساری برزنی فرمی که وادله منی شدم من آخر ماهی دلنت دزه پول کواده کات و دیسن فرمی تو بو آواند نبود منی شدم لبیرم چو برزنی فرمی اگر برام اوانه شورش بر رویده بند، بودم با شرط هزی بارزانیان با بجه بیالی اویش فرموی، هجر، تو زور لدنیاتی نگی، او ما مستیانه دیانوی پول و پلیگ لدولت ورگرنو بسنو مالی خواین قطوه ناکم بم ارزوه بگن، منیشوتم، که که باور ناکم نیازیانوا بی بارزانی فرموی، آه، دیبینی، به همیدم تو خود شید نکی و توشی او نخوشی سری پرستی نبی گرانی ئازیز و لێرە دابم شێوەیە دیە کۆتایی بەشی شینی خوێنەوەی کتتیبی چشتی مجوری ئاژاریم کوریانی تاشوێکی تر و لبش بەشێکی تری خوێنەوەی ئەم کتێبدا پێتان دەگەینەوە شوتان شاد ئارام بن